دوستان به کلاس دیگری از دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. امروز دوری جدید رو شروع میکنیم که طی اون شاید معروفترین و در این حال سختترین متن در کل کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم که به موعزه سر کوه معروف است. ما این دوره رو فرصت بزرگی برای شما میدونیم که به ما بپیوندین و امیدواریم که نه تنها در تمام جلسات این دوره شرکت میکنید بلکه از دوستانتونم دعوت کنید که در مطالعه اساس تعالیم عیسی در موعظه سرکوه با ما همراه باشند با هم به معلممون گوش میکنیم بسیار خوشحالم که از این جلسه سری جدیدی از درسها را با شما شروع میکنم که یکی از محبوبترین قسمتهای من در کتاب مقدس تحت عنوان موعظه سر كوه است که در بابهای پنج شش و هفت انجیل متا ثبت شده موعزه سر کوه یکی از تعالیم بنیادی ایسا هست، یکی از بزرگترین مباحثات ایسا است. مباحثه کوه زیتون مباحثه بزرگی بود که در متا 24 و 25 آمده و مباحثه دیگه البته مباحثه بالاخانه هست که در بررسی انجیل یوحنا اون رو دیدیم. وقتی عهد جدید رو بررسی می کردیم، اگر با ما بودید، حتما با مباحثه بالاخانه آشنایی داریم مباهزه بالاخانه طولانی ترین مباهزه ای هست که از عیسی ثبت شده اما سر سرکو به عنوان اساسی ترین او مورد ملاحظه قرار گرفته. این مباحثه به عنوان جوهر تعالیم عیسی از نظر ارزش ها و اخلاقیات او هست. کسانی هستند که میگویند شما می توانید این سباب از انجیل متا رو بردارید، اونها را از کتاب مقدس پاره کنید و بقیه عهد جدید را دور بیاندازید آنها فکر میکنند که سر سرکوه بسیار غنی هست و فکر میکنند که سر سرکوه جوهر تمام کتاب مقدس به لحاظ اخلاقی هست و از این رو فکر میکنند این تنها چیزی که شما نیاز دارید البته من به اون تندی نمیرم اما این مباحثات یقینا جزء مهمترین مباحثات عیسی هستند در اولین جلسه مطالعه معظه سرکوه، مایلم که مؤعزه رو در زمینه خودش ببینیم و مایلم که مؤعزه سرکوه رو به لحاظ محتوایی هم ملاحظه کنیم. اما در این جلسه اول بذارید زمینه مؤعزه رو ملاحظه کنیم. یکی از قوانین مطالعه کتاب مقدس این هست که باید یاد بگیرید های کتاب مقدس رو در زمینه اون نگاه کنید. کلمه زمینه به معنی همراهی با متن هست. مهمه که وقتی متنی رو مطالعه می‌کنید ببینید چی در اون میاد. چی اول اومده؟ چی بعد اومده؟ وقتی که تعالیم داده میشد، بوزو از چه قرار بوده؟ این قاعده مهمی در مطالعه کتاب مقدس است. پس حالا که مطالعهمون رو شروع می‌کنیم، بذارید با ملاحظه زمینه موعظه سر شروع کنیم. شرایطی که در اون موعظه داده شده. انجیل یوحنا به روشنی به این زمینه در باب شش خودش اشاره کرده. در باب شش یوحنا میگوید که اوایل خدمت عیسی جمعیت انبوهی دنبال او می و این جمعیت انواع مشکلاتی رو که میشه تصور کرد داشتند. به اون مشکلات اشاره میکنه و مردم رو شفا میده. یوحنا در باب شش انجیل یوحنا در آیات دو و سه میگه، وقتی عیسی انبوه جمعیت و مشکلات آنها را دید با شاگردانش بالای کوهی رفت و آنجا نشست. وقتی در انجیل یوحنا این رو میخونیم، چیز زیادی دستگیرمون نمیشه اما هدف یوحنا این نبود که موعظه سر کوه رو برای ما گزارش کنه. یوحنا انجیلش رو ها نوشته و بذارید همینجا اشاره کنم که 90 درصد از چیزی که یوحنا در انجیلش به ما میگه دیگر نویسندگان اناجیل در موردش صحبت نکردند پس هدف یوحنا این نبود که تعالیم موعظه سر کوه رو برای ما تکرار کنه او به زمینه یا شرایطی اشاره میکنه که در آن گفته شده آنگاه به بالای کوهی رفت و با شاگردان خودش در آنجا نشست روشی که یوحنا این رو گزارش میکنه به نظر نمیرسه که چیز بسیار راه راهبردی باشه مرقس اطلاعات بیشتری به ما میده او در مرقس میگه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 چون اونقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او حجوم می آوردن تا او را لمس کنن. همینطور ارواح ناپاک وقتی او رو می در جلوی او به خاک می و با صدای بلند فریاد می تو پسر خدا هستی. عیسی با تأکید به آنها امر می کرد که این را به کسی نگوین. بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می خواست پیش خود فراخواند اونها پیش او رفتند. او دوازده نفر رو تعیین کرد تا پیش او بمانند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد و قدرت بیرون کردن دیوها رو به اونها داد. در مرقس باب سه ما نام دوازده رسول رو میبینیم بینیم که او تعیین کرده. مرقس در مورد این دوره در اوایل خدمت عیسی زمانی که خدمت شفای او در اوج خودش بود با ما صحبت می مردم از سراسر آن نواهی به سوی او می آمدند. چون در مورد قدرت شفای او شنیده بودند و او در بهبهه این خدمت بزرگ شفا که در اطراف جلیل انجام میشد، انواع مشکلات قابل تصور رو شفا میداد. نواحی اطراف جلیل تا به طرف تپه ها سرازیری بود و در متن نوشته شده که عیسی به طرف این تپه ها رفت که ما به اون دامنه کوه می‌گیم عیسی از انبوه جمعیتی که او را هل میدادند و فشار میدادند، و سعی میکردن او رو لمس کنن جدا شد. این انبوه جمعیت کنار دریای جلیل بودن. ظاهرا ایسا از اونها جدا شده و به قسمت بالاتری از تپه رفته و بنابه گفته مرقس سه سیزده کسانی رو که میخواسته نزد خود دعوت کرده. با دعوتی شخصی آنها او رو در سطحی بالاتر ملاقات کردند و بعد در اون سطح بالاتر مطا به ما خواهد گفت که ایسا این تعالیم رو داد که به سر کوه معروف است. در مرقص بابسه در آیات سیزده و چهارده شما میتونید تمام متا پنج، شش و هفت رو قرار بدید. در پایان تعالیم در متا هفت بر اساز نوشته های متا، بلافاصله بعد از اینکه او از کوه پایین میاد، دوازده رسول رو به معمولیت میفرسته. مرقس اینطور گزارش میکنه که عیسی بالای کوه میره و اده خاصی رو دعوت میکنه که به او ملحق بشن و در نتیجه این ملاقاتی که او با اونها داشته دوازده نفر رو تعیین میکنه که با او باشن و بعد فرستاده بشن مرقس زمینه معزه سرکوه رو اینطور برای ما گزارش میکنه حالا بذارید به متا نگاه کنیم در پایان متا باب چهار آیه 23 شرح متا رو از زمینه این تعلیم بزرگ میبینیم که در متا باب چهار آیه 23 به ما میگه عیسی در تمام جلیل میگشت در کنیسه های آنها تعلیم می‌داد و مجده پادشاهی خدا را اعلام می‌کرد بیماری‌ها و ناخوشی‌های مردم را شفا می‌بخشی او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مسروان و مفلوجان را نزد او میآوردند و او آنان را شفا می‌بخشی جمعیت کثیری نیز از جلیل و دکاپولیس از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او روانه شدند. وقتی ایسا جمعیت زیادی رو دید، به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند و او دهان خود را گشوده به آنان تعلیم داد. بعد به متا پنج شش و هفت می رسید که به اون معوضه سر کوه می گید. آیا زمینه ای رو که این تعالیم بزرگ در اون داده شده ملاحظه کردید؟ من به این اولین گرده همایی در خلوت میگم. زمان خلوت زمانیه که ایمان کارهای روزمره خودشون رو کنار میذارن و خودشون رو به لحاظ روحانی تازه میکنن پس منظور من از گفتن اولین گرده همایی در خلوت این بود که شاگردان کارهای روزمره شون رو کنار گذاشته و با عیسی خلوت کرده بودن تا به لحاظ روحانی تازه بشند. به نظر من کاری که عیسی در این گرده همایی انجام داد چیزی بسیار راهبردی بود. گفته شده که اگر می خواهید رهبری تأثیر گذار باشید، باید یاد بگیرید پنج کار را انجام بدید. باید یاد بگیرید تجزه تحلیل کنید، باید یاد بگیرید سازماندهی کنید، باید یاد بگیرید به دیگران نمایندگی بدید و بعد نظارت کنید و بالاخره تقلا کنید. به این ترتیب شما میتونید یک مجری تاثیر گذار باشید. اول وضعیت رو تجزیه تحلیل میکنید و بعد روی کرده راهبردی خودتون رو نسبت به وضعیت ساماندهی می کنید. وقتی دارید سازماندهی میکنید باید یاد بگیرید نمایندگی بدید مگر اینکه بخواهید همه کارها رو برای همیشه خودتون انجام بدید. نمایندگی دادن یعنی دادن مسئولیت به دیگران تا اینکه بتونن به شما کمک کنن. شما باید با موفقیت نمایندگی بدید و بعد به کسانی که نمایندگی دادید نظارت کنید. و وقتی اونها اون رو اونطور که شما انجام میدادید انجام ندادن، به جای پس گرفتن مسئولیت از اونها باید یاد بگیرید به خاطر کسانی که بر اونها نظارت می کنید تقلا کنید. از یک نظر عیسی هم به همین روش کار می کرد. اون میدونست خدمتش چی بود. خدمت و این بود که نیازهای این جمعیت انبوه رو براورده کنه این جمعیت انبوه با تمام مشکلاتشون به اعتقاد من نماد دنیا هستن و تمام مشکلاتی که مردم این دنیا دارن جسمانی، اقلانی، احساسی و مخصوصا روحانی در این جمعیت انبوه مجسم شده در دنیای امروزی این معمولی هست که افراد غیر قابل پذیرش به لحاظ اجتماعی رو در بیمارستان ها و آسایشگاه‌ها جا میده افرادی مثل جزامی ها و یا مثلا دیوانه ها اما در ایام عیسی اینطور نبود تمام این افراد مشکل دار که امروزه ما اونها رو در موسسات قرار میدیم همه اونها در بین انبوه جمعیتی بودند که عیسی میدید در سرتاسر سر, سر نوشته‌های اناجیل گفته شده که وقتی عیسی این جماعت انبوه رو دید به خاطر اونها گریه کرد کلمه که در یونانی برای گریه استفاده شده همون حق حق کردن بود که تمام بدن او به خاطر این جمعیت انبوه می‌لرزید چون اونها مانند گوسفندانی بودند که شبان نداشتند اونها دست چپشون رو از دست راست تشخیص نمیدادند. اونها راست رو از غلط تشخیص نمیدادند. اون جمعیت انبوه مردم با کوهی از مشکلاتشون در مرکز توجه ما در زمینه ای قرار گرفتند که موعظه سر کوه در اون زمینه داده شده ایسا داشت این جمعیت رو خدمت می کرد او میدانست که در یک بدن به عنوان یک انسان او هرگز نمی به تنهایی تمام این مشکلات رو خودش حل کنه حتی اگرچه او پسر خدا بود پس او تجزیه تحلیل کرد و بعد چیزی رو سازماندهی کرد که من به اون اولین گرده همایی در خلوت گفتم او در دامنه کوه برقی از شاگردانش رو جمع کرد و به نظر من چیزی که او در این اولین گرده همایی یا موعظه سر کوه با آنها می چنین چیزی بود. آیا دلتون می خواد بخشی از راه حل مشکلات این جمعیت انبوه که در کنار دریای جلیل هستند بشی؟ آیا دلتون می خواد بخشی از پاسخ نیازهای کسانی باشید که اون پایین می بینید؟ اینجا وقتی شما زمینه ای رو می بینید که ایسا در اون تعالیم بابهای پنج، شش و متا رو میده، عیسی داره چالشی پیش روی اونها میذاره و چالش این هست. آیا شما بخشی از مشکل هستید یا بخشی از راه حل؟ آیا شما بخشی از پاسخ هستید یا خود شما علامت سؤال دیگری هستید؟ چالش البته این هم بود. آیا دلتون نمیخواد بخشی از پاسخ باشی؟ ایسا داشت میگفت اگر در این گرده همایی به من بپیوندید، من با تعالیمم به شما نشون خواهم داد که چطور میتونید بخشی از پاسخ و بخشی از راه حل باشید، بخشی از پاسخ من و بخشی از راه حل من برای تمام مشکلاتی که اون پایین هست و یادتون هست که گفتیم جمعیت انبوه پای کوه نماد دنیا با تمام مشکلاتش هست این مشکلات اساساً روحانی هستند، اما توسط مشکلات احساسی، اقلانی و یا جسمانی به تصویر کشیده شدن بعد از اینکه که ایسا این گرده همایی رو سازماندهی میکنه، هدفش این هست که به کسانی که بخشی از راه حل او خواهند شد نمایندگی بده. عیسی به اونها شاگردان میگه. شما میتونید به اونها بگید نمایندگان. او میخواد شاگرد یا نماینده بسازه. نقشه عیسی این هست که تمام چیزی که میخواد به دنیا بده به وسیله شاگردانش عرضه بشه. وقتی او به پنج هزار نفر قضا میده شما تصویری از این رو میبینید. وقتی انجیل یوحنا رو مطالعه کردیم این رو دیدیم عیسی میتونست مستقیما به انبوه جمعیت غذا بده اما این کار رو نکرد او به طور راهبردی شاگردانش رو بین خودش و جمعیت گرسنه قرار داد عیسی غذایی رو که به طور معجزه‌آسا تکسیر شده بود با دست شاگردانش به دست این جمعیت گرسنه رسوند ما این رو مثل رویای خدمتی عیسی گفتیم خب وقتی زمینه معجزه کوه رو بررسی میکنید، این قبیل چیزها رو خواهید دید بعد از اینکه عیسی در متا پنج شش و هفت تعلیم میده توجه کنید که تعالیمش چگونه به پایان میرسه از آیه سیزده باب به هفت متا ایسا دعوت بزرگی میکنه او اینجا هم چالش بزرگی مطرح میکنه اما چالش اینجا این نیست که آیا شما بخشی از مشکل هستید یا بخشی از راه حل آیا شما بخشی از پاسخ هستید یا علامت سؤال دیگری چالش در اینجا چنین چیزی نیست. چالش در اینجا این هست. شما چه نوع راه حلی هستید؟ شما چه نوع پاسخی هستید؟ شما چه نوع شاگردی برای من هستید؟ می خواهید برای من چگونه شاگردی باشید؟ این جهت این دعوت هست که با اون او این تعالیم بزرگ رو به پایان می بره. من همه اون رو نمی خونم اما بذارید براتون خلاصه کنم و بعد ببینید آیا این حقیقت داره؟ از آیه 13 شروع می کنیم و تا آیه 14 ادامه می دیم. به نظر می عیسی ایسا اینو میگه. گه دونو شاگرد وجود دارند دو دونو راه حل یا پاسخ وجود دارند اونهایی که زیاد هستند و اونهایی که اندکند اونهایی که زیادند فکر می کنند که شاگردی آسونه فکر می کنند بخشی از پاسخ و بخشی از راه حل من بودن آسونه اونها فکر می کنند همه چیز از دروازه بزرگ شروع میشه. که به‌جای پهن ادامه پیدا می‌کنه اما متوجه میشن که این راه به بخشی از راه حل من و پاسخ من بودن منتهی نمیشه. اون به تباهی ختم میشه و ایده زیادی هستند که اقرار میکنن شاگرد هستند و در راه فراخ گام برمی‌دارن چون فکر میکنن که میتونند از او پیروی کنند و راه آسون رو انتخاب کنند اونها فکر میکنن بخشی از راه حل و پاسخ بودن آسونه اما هرگز پاسخ و یا راه حل نمیشن. از این رو عیسی کسانی رو که در اولین گرده همایی شرکت کرده بودند و آرزو داشتند که شاگرد او بشن با این نوع بندی در گرده همایی به چالش میکشه که بخشی از راه حل او باشند. آیا شما یکی از اون افراد زیادی هستید که فکر میکنن راه حل آسونی برای شاگردی عیسی وجود داره؟ یا جزء اون تعداد اندک هستید؟ اسا گفت تعداد اندکی هستند که میتوانید به آنها اقلیت متحد بگید کسانی که میدانند برای راه حل و جواب او شدن باید از در تنگ عبور کرد و به دنبال اون در تنگ مشکلات خواهند بود و راهی که منظم هست. اما کسانی که این را درک میکنند پاسخ و راه حل و شاگرد حقیقی او خواهند شد پس چالش اینه آیا شما جز اکثریت هستید یا جزء اقلیت و این مربوط به نوع شاگردی ما هست بخش بعدی دعوت او در انتهای متا هفت این هست که ادهی هستند که حقیقی هستند و ادهی که دروغین هستند برای عیسی تعجبی نداره که کلیسا مخلوطی از هر دو گروه است. او در مثل گندم و کرکاس تعلیم داده که اینگونه خواهد بود عیسی گفته شما گندم هایی هستید که پدر در این دنیا کاشته اما دشمن در بین گندم ها کرکاس میکاره. وقتی عیسی این مثل رو در متا 13 می گفت سؤالی پرسیده شد آیا تو بذر خوب در مزرعه نکاشتی کرکاس ها از کجا آمدند و بعد از او پرسیدند آیا می خواهی کرکاس ها را از مزرعه بکنی و جواب این بود نه چون که شما نمیتونید فرق بین گندم و کرکاس رو تشخیص بدید بذارید هر دو با هم رشد کنند و در وقت خرمن که زمان داوری هست، من گندم را از کرکاس جدا خواهم کرد برای عیسی تعجبی نداره که در بین کسانی که ادعا کنند شاگرد هستند شاگردان حقیقی و شاگردان دروغین وجود دارند در انتهای این دعوت و در پایان این گردهمایی در متا هفت بخش دوم دعوت او این چالش است عیسی میپرسه آیا شما یکی از راهلهای حقیقی هستید یا راه حل‌های دروغین آیا جواب درست و شاگرد حقیقی من هستی بقیه باب هفت بر سومین قسمت از دعوت او متمرکز است عیسی میگوید دی زیادی هستند که حرف میزنند اما تعداد اندکی هستند که عمل میکنند کسانی که واقعا اراده من و اراده پدر را به جا می آرند. بسیاری در آن روز به من خواهند گفت سرورم سرورم و من به آنها خواهم گفت هرگز شما را نشناختم از من دور شوید ای بدکاران. اینها برخی از وحشتناکترین و غمنگیز سخنان در کتاب مقدس هستند. مردم در داوری نزد عیسی خواهند آمد و زندگیشون با این کلمات خلاصه خواهد شد. سرورم آیا کارهای خاار زیادی انجام ندادیم؟ و عیسی هم زندگی اونها رو با این کلمات ارزیابی خواهد کرد. هرگز شما را شناخته ای بدکاران. شما واقعا کسانی نبودید که، اراده مرا و اراده پدر رو به جامعه آوردید شما شاگردان حقیقی نبودید بسیاری از مردم فکر می کنند که پادشاهی خدا یا کلیسای مسیح یا مسئله مسیحیت فقط مربوط به مسائل الهیاتی میشه و یا به معنی شناسی بیشتر اهمیت می دن که چه چیزی را باید چگونه گفت چنانکه که گویی فقط نحوه ادای کلمات اهمیت دارد ایسا در سومین قسمت از دعوت خودش میگه آیا شما جزء کسانی هستید که فقط حرف میزنند یا جزء کسانی هستید که عمل میکنند؟ آیا شما فقط حرف میزنید؟ آیا ایمان شما مربوط به مقدار زیادی مطالب الهیاتی هست؟ فقط یک سری حرف های مذهبی میزنید؟ یا با فیض خدا جزء کسانی هستید که عمل میکنند و واقعا اراده پدر را آنگونه که در من تجلی کرده به جا میآورید گفته شده که ما به چیزی که داریم عمل میکنیم بقیه فقط مشتی های مذهبی بیهوده است به این ترتیب به نظر میرسه که خداوند تعالیم خودش رو در موعظه سرکوه به پایان میبره خب شما زمینه موعظه سرکوه رو دیدید زمینه که عیسی این تعالیم بزرگ رو به ما داده ما در جلسه آینده به محتوای موعظه نگاه خواهیم کرد و اون رو مرور خواهیم کرد اما قبل از اینکه به محتوای این اولین گرده همایی مسیحیان هم برسیم بذارید باز هم زمینه ای رو ملاحظه کنیم که او تعالیمش رو در اون زمینه داده چالش بزرگ برای من و شما این هست آیا شما بخشی از مشکل هستید یا بخشی از راه حل؟ آیا شما بخشی از جواب هستید یا فقط علامت سوال دیگری؟ آیا شما بخشی از راه حل او برای مشکل این جهان هستید؟ آیا شما بخشی از جوابی هستید که عیسی به این جهان آورد یا خود شما سوال دیگری هستید؟ این چالش بزرگی هست که ما در بررسی زمینه سر سرکوه ملاحظه می کنیم. یادتون باشه تمام تعالیمی که در متا پنج شش و هفت داده شده در این زمینه آمده و ما باید اون رو در اون زمینه ملاحظه کنیم. همینطور اون صحنه جمعیت مورد بحث در یوحنا باب شش و مرقص باب سه و در انتهای متا باب چهار رو فراموش نکنید. چون تمام تعالیم عایم سر سرکو توسط شاگردان نمایندگان عیسی که به این جمعیت اشاره می کند، تمام مشکلاتی که در این جمعیت نشان داده شده بیانگر مشکلات این دنیا و مردم این دنیا هست. به نام گفته مدا اولین کاری که ایسا در ابتدای خدمت علنی خودش انجام داد این بود که، یک گردهمایی همایی ترتیب داد که در اون می توانست راه حل ها و جواب ها رو تعیین کنه کسانی که راه حل اون می پیروان او شاگردان او و جواب او برای تمام مشکلاتی که در این جمعیت نشان داده شده بود که مشکل مردم این دنیا هست عزیزان امیدواریم که این درس ها شما رو تشویق کنه که در شناخت تعلیمی سای مسیح رشد کنید و شما رو تشویق کنه که پیرو حقیقی ایسا باشین و بخشی از راه حل او و بخشی از جوابهای خداوندمون برای مشکلات این دنیا باشین ترتیبی بدید که در جلسه بعد باز هم با ما همراه باشین و یادتون نره که از دیگران هم دعوت کنی که در ادامه درسهای دانشکدی کوچک کتاب مقدس با ما همراه باشن تا برنامه بعد فیض خداوندمون ایسای مسیح شما رو پر کنه و لبریز کنه تا بتونین فیض او رو به دیگران نشون بدین